جنوا ایتالیا 7 فوریه 1964 یک مرسدس سیاه رنگ مقابل کلیسا سانتا ماریا دی کاستلو توقف کرد خیابان پیش در پیش منتهی به کلیسا بسیار باریک بود و اتومبیل تمام عرض خیابان را می پوشاند پشت سر مرسدس یک اتومبیل حفاظت ایستاد محافظان بلا فاصله از اتومبیل پیاده شدند اطراف را با دقت بررسی و سپس به راننده مرسدس اشاره کردند. راننده در کسری از ثانیه پیاده شد و در عقب اتومبیل را باز کرد. فرانکو بتگا از اتومبیل پیاده شد و به آرامی از پله‌های کلیسا بالا رفت. هر روز صبح پیش از رفتن به دفتر کارش همین کار را می‌کرد. چند لحظه ایستاد. دستی بر موهای سفیدش کشید. مشکی شیک خود را صاف کرد سپس قدم به داخل گذاشت دو طرف سالن کلیسا پوشیده از ستونهای مرمری بود که روی تاقهای ققستار چوبی قرار داشت این تاقها ستونها را بلندتر و زیباتر نشان می‌داد بنای این کلیسا و ستونهایش بیش از هزار سال قدمت داشت فرانکو از سالن گذشت همیشه عظمت این مکان پرنور و درخشان او را به وجد می آورد. چشم هر بیننده‌ای با دیدن آن احساس آرامش می‌کرد. هر وقت که از اینجا رد می‌شد، در برابر آن سر فرود می‌آورد. قبل از اینکه به انتهای تالار برسد، رو به مجسمه حضرت عیسی علیه السلام کرد. تقریبا در انتهای تالار، مجسمه از حضرت عیسی نزدیک سقف آویزان بود. فرانکو به طرف مجسمه رفت. چشمانش را بست. بر سینهش سلیب کشید و از خدا خواست روزش را متبرک گرداند. به صف اول نیمکت های چوبی کلیسا رسید. کلیسا تقریبا خالی بود. تنها یکی دو نفر در حال دعا و عبادت بودند و نماز میخاندن. انجیل را گشود و مشغول خواندن شد. چند دقیقه بعد آن را کناری گذاشت و شروع به خواندن نماز کرد. به پیکرهای طلایی، نقش آنها به وضوح در وسط ستون حک شده بود، چشم دوخت. اطراف تصاویر دایره های زیادی نقش بسته بود و کندکاری آن به زمان ساخت کلیسا برمیگشت. چشم از تصاویر حضرت مسیح و حضرت مریم برداشت و سرودی که همیشه به خواندنش عادت داشت، زیر لب زمزمه کرد. سپس نمازش را با دعا برای موفقیت در کار روزانش به پایان رسند. دعا کرد خدام، آن روز را پر از برکت قرار دهد و خانواده را از بدی ها حفظ کند. فرانکو بعد از اینکه نمازش را تمام کرد به پشت مهراب کلیسا و به طرف اتاق کشیش ها رفت. آرام چند ضربه به در زد. صدایی از پشت در به او اجازه ورود داد. بیا تو. در را باز کرد و وارد شد. کشیش دستش را جلو آورد تا با او دست بدهد. فرانکو بر انگشتر او بوسه زد. صبح خیر پدر. حالت چطور فرانکو؟ خوبم، همه چی به راهه. این مکالمه و دیدار فرانکو و کشیش هر روز به همین شکل تکرار میشد. یک یا دو جمله کوتاه میانشان رد و بدل می و به دنبال آن <تصفح> کشیش برای او و خانوادهش دعا می کرد و برایش روزی موفق و پربرکت آرزو مینمود. قبل از اینکه فرانکو از اتاق خارج شود کشیش به او یادآوری کرد، امروز خواهر مارگریتا میاد به دیدنت به خاطر همون موضوعی که قبلا با هم حرف زدیم نگران نباش بدر. همه چی آماده است هیچ مشکلی وجود نداره در اتاقی کوچک و سرد در سونه ای واقع در یک باغ در محله بوسکتو روی تخت نشسته بودم در آن هوای سرد عرق کرده بودم با دست جلوی دهانم را گرفتم تا صدای فریادم را خفه کنم اشکم با سرعت بر هایم جاری می شود. از وقتی به این سومعه آمده بودم همیشه صبح این گونه از خواب بیدار می شدم. بعد از عبور از مرز ایتالیا و سوئیس، آن جنایتکار مرا به یک راه به سپرد و همراه او به شهر جنوا آمدم هر شب کابوس می دیدم. حتی آرامش حاکم بر سومعه هم نمی توانست مرا از شهر کابوس هایم رها سازد تنها راه فرار از تکرار کابوس ها این بود که اصلا نخوابم. منظره بیرون پنجره کمی آرامم کرد. باغ لباس یک دست سبز پوشیده بود. اطراف صومعه کوچک پر از نخلهای بلند و زیبا بود. حدود یک هفته میشد که این سومه پناهگاه من شده بود. با اینکه هوا پوشیده از ابر و مه بود، اما می توانستم از پنجره به بیرون نگاه کنم و زیبایی آن مکان تمام وجودم پر از آرامش شود. آنچه بیشتر به من کمک میکرد، گذشته را فراموش کنم، احساس معنویتی بود که در آن مکان مرا را دربر میگرفت. بیشتر این احساس را از نماز و دعا به دست می آوردم. مانند کسی بودم که بدون برنامه ریزی به سفر میرفت. سفری که در آن انتقال جسم از مکانی به مکان دیگر اتفاق نمی بلکه روح با آرامشی فوقالاده، پله پله بالا می رفت و اوج می گرفت. حس می کردم مادرم دائم همراه هم است. او را به یاد می آوردم که چگونه دین از او انسانی ساخته بود که دائما آرامش داشت حتی وقتی امواج زندگیش متلاتم می شد. بلند شدم. لباس عوض کردم و برای دیدن خواهر مارگریتا آماده شدم. دیروز ساعتی را برای ملاقات تعیین کرده بودیم. تصمیم قطعی گرفته بودم که امروز سؤالاتم را از او بپرسم و سعی کنم از خلال آن به پاسخی برای سرگردانیم برسم. نمی در آینده چه در پیش دارم. وقتی دیدمش با لبخند درخشان و پرفروغش نگاهم کرد. لبخندش قلبم را جلا می و سرشار از نور می کرد. هر وقت با او روبرو می شدم دو احساس متفاوت در خود می آفتم. اول، آرامش دائمی کمی حسادت می‌کردم و دوم آرزو می‌کردم من هم کمی از آن پاکی و صفایی را که صبحگاه چهره‌اش را درخشان می‌کرد داشته باشم امروز یک روز پرحادثه خواهد بود لیلیان خواهر مارگریتو بعد از این حرف از من خواست با هم نماز بخوانیم. وقتی نماز و دعا, دعا تمام شد دیگر نمی‌توانستم صبر کنم می‌خواستم هر چه زودتر سؤالی که در ذهن داشتم از او بپرسم چرا تصمیم گرفتی راهه ببشی؟ اصلا چی میشه یک زن یک زن چنین تصمیمی بگیره؟ درخشش لبخندش بیشتر شد چشمانش برق میزد با همان آرامش جواب داد هر کسی برای این انتخابش دلایل خودش رو داره من فقط میتونم دلیل خودم رو بهت بگم که چی باعث شد وارد این مسیر بشم من همیشه هدفم این بود که به بهترین روشی که میتونم زندگی کنم چون فکر میکنم دلیل زندگی ما همینه که بهترین خودمون باشیم. من به عنوان یک زن کاتولیک متعهد، انتخابهایی داشتم. اینکه تنها زندگی کنم یا اینکه ازدواج کنم و یا اینکه بیام در مسیر دین قرار بگیرم. نمیگم دین داری چون با اون دو گزینه اول همیشه دین دار بود. میگم مسیر دین. منظورم از مسیر دین همون وارد شدن به تشکیلات دینی هست. همیشه تصورم این بود که یک همسر خوب خواهم شد. آرزو می کردم مادر بشم و فرزندانم همه وقت و زندگیم رو پر کند و به اونها عشق بورزم نمیدونم چرا اما تصمیم گرفتم راه شدن رو امتحان کنم. گاهی که به گذشته فکر می کنم نمیدونم اگه این راه رو انتخاب نکرده بودم خدا چه سرنوشتی برای آینده من رقم می کمی <تصح> سرگردان بودم اما زیاد طول نکشید که فهمیدم تنها پاسخی که می به ندای درونم بدم اینه که راهبه بشم. راهبه بودن شغل نیست. همونطور که مادر بودن شغل نیست. هر دو در واقع نوعی رشد و شکوفایی هستن. حالا که به گذشته نگاه میکنم و اینکه عمرم،, عمرم رو در چه مسیری سپری کردم می بینم خدا من رو برای خودش برگزیده و به خودش نزدیک کرده و آرامش و سعادتی که نتیجه ی قرب الهی هست رو نصیب من کرده. همچنان که حرف می زد چهرهش می درخشید. درست مثل عاشقی که از معشوق خود حرف می‌زند. صحبتش را قطع کرد و لحظه‌ای ایستاد. بیا لیلیان. حرف زدن درباره راهبه‌ها کافیه. همونطور که بهت گفتم، یه روز شلوغ و پرکار در پیش داریم. بندر قلب تپنده شهر جنوا به همین دلیل کاملا منطقی بود که دفتر کار خانواده بتگاه در ساختمانی نزدیک بندر و مشرف به دریا باشد. فعالیت ظاهری خانواده که فرانکو بعد از پدرش مدیریت آن را برعهده داشت، کشتیرانی و حمل و نقل دریایی بود. اما این کار یک روی سکه و در واقع جنبه قانونی فعالیت‌های آنها محسوب می‌شد. و در پشت پرده آنها در کار تجارت و قاچاق غیرقانونی انسان و مواد مخدر و عضوی از مافیای سیسیل و جنایت سازمان یافته آن بودند. بدون شک فرانکو مهمترین و در عین حال خطرناکترین مرد جنووا بود و نبض زندگی این شهر با فعالیت های غیرقانونی او گره خورده بود مسئولان جنووا و پلیس تحت کنترل او بودند و فرانکو بدون هیچ رقیبی بر اقتصاد غیرقانونی و پشت, پشت پرده شهر جنووا حکم میراند و قدرت اول اقتصادی این شهر به حساب میآد وقتی فرانکو وارد اتاقش شد، پسرش لورنزو را منتظر خود یافت. لورنزو تنها وارث او بود. چشمان پسر از هیجان برق میزد او چند ماه پیش کار با پدرش را شروع کرده بود. فرانکو خیلی به پسرش افتخار می‌کرد. از عملکرد او و شور جوانیش راضی بود. و میدانست که پسرش در کسب و کار و تجارتشان روزی از خودش هم ماهرتر خواهد شد. فرانکو دید جوان آرام و قرار ندارد و مشتاقانه می‌خواهد جزیات معامله جدیدش را به او اطلاع دهد. لورنزو می‌خواست مهر تایید پدرش را برای بستن یک قرارداد بگیرد. دیروز عصر یه تماس از برلین داشتم جناب دون یکی از یهودیایی که در کار تعقیب نازی ها هست فکر می‌کنه یک خانم آلمانی از دارودسته ها داره سعی می‌کنه از راه جنوا فرار کنه. اون از ما خواست برای دستگیری این زن باهاش همکاری کنیم. میدونی چی به من گفت پدر؟ گفت خواب و بیداری جنووا به دست خانواده ی و به همین خاطر مطمئن هست که اگر اون خانم در جنوا باشه قطعا ما میتونیم به اونها تحویلش بدیم. اول پیشنهاد سی میلیون لیره رو مطرح کرد اما من مبلغ رو به پنجاه میلیون لیره رسوندم. فرانکو به پسرش لبخند زد. خوشحال بود از اینکه میدید. او چطور در مقابل چشمانش بزرگ می شود و با مهارت ها و بلند هایش در تجارت قلب او را و از شادی می کند. یکی دو ساعت بعد مارگریتا به همراه لیلیان وارد دفتر فرانکو شد. فرانکو از جا بلند شد و به آنها خوش آمد گفت. بر دست راهبه و پیشانیش بوسه زد و از آنها دعوت کرد بنشینند. لورنزو هم برخ... از جا برخاست. و زمن خوش آمدگویی ای سریب بر دست راهبه زد. اما دوست راهبه که اون نیز لباس, لباس خاکستری راهبه ها را پوشیده بود به نظرش کمی مشکوک می آمد. جناب دون بدکا ایشون لیلیان اشمیت هستند. همونی که پدر فرانچسکو دربارش با شما صحبت کرده. زربان قلب بدکای جوان شدت گرفت و چشمانش برغ زد. نگاهش بین پدرش و لیلیان می چرخید. ابتدا نگاهی به پدرش انداخت. چهره فرانکو کاملا عادی بود و هیچ تغییری در آن دیده نمیشد. سپس به تومه گران قیمت و با ارزشی که با پای خودش به آنجا آمده بود نگاه کرد. مارگریتا دو برگه و یک پاکت بزرگ زرد رنگ از کیفش بیرون آورد و بعد رو به لیلیان کرد و گفت: لیلیان، تو امروز به کمک آقای بتگا از جنوا خارج میشی. برای حفظ امنیت تو. هیچ کس غیر از ایشون مقصد نهاییت رو نمیدونه. ما مدارک لازم برای ورودت به کشورهای مختلف رو آماده کردیم. در هر کدوم از این کشورها افرادی از ما هستن تا برای شروع زندگی جدیدت به تو کمک کنن. دو تا گذرنامه بهت میدم. اولی از طرف صلیب سرخ و به اسم یک راهبه به نام بیاتریس صادر شده که با عکس و بقیه اطلاعات البته به جز اسم اصلیت آماده شده. و دومی، یک گزرنامه آلمانی به اسم لیلیان بیکر هست. اون شخصی که بهت کمک کرد تا به اینجا بیایی، این پاسپورت رو به ما داده. گذرنامه آلمانی، چند ویزا برای ورود قانونی به دو کشور آمریکای لاتین، یعنی آرژانتین و شیلی هم داره. توی این پاکت، نامه‌هایی برای دوستان ما در این کشورها هست. به هر کدوم از این کشورها که سفر کنی، میتونی از این نامه ها استفاده کنی. و از دوستان ما درخواست کمک کنید. لیلیان کاملا گیج و دستباچه شده بود. خواهر مارگریتا قبل از خداحافظی او را محکم در آغوش فشرد سپس از آنجا بیرون رفت و لیلیان را با فرانکو و پسرش تنها گذاشت. لورنزو آهسته در گوش پدرش گفت با برلین تماس بگیرم پدر؟ فرانکو پسرش را به کناری کشید و جواب داد نه لورنزو اون رو به کشتی ببر لورنزو متعجب شد. فکر میکرد حتما پدرش هم مثل او میخواهد آن پنجاه میلیون لیره را به دست آورد و به خزانه خود اضافه کند. فرانکو لبخندی زد و گفت باید برای خدا هم کارهایی انجام بدیم تا به اموالمون برکت بده و گناهانمون رو ببخشه. بعد رو به لیلیان کرد. لیلیان متحیر از آن اتفاقات روی صندلی نشسته بود. فرانکو گفت امشب با کشتی به طرف اسکندریه حرکت می کنی. میری به مصر خواهر به آتریس.